أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله سيدنا الله وآله المعصومين على اللهم اصل بحثی رو که مرموم شیخ مرموم درم اگر قصد و احکام شرعی فیدا بشه از بیر مقدمات شرعیه به اصطلاح ها از مقدمات اقلیه آن این از خجتی ایشون و خالف قصه رو مرموم ویزا محمده. محمد محمد امین استرابادی ایشون غیران ویزا محمد اخباری هم که مرموم بر میز محمد این استراوایر زله تعالی علیه نام بردن مخالفه در مسئله رو و بعدم کلمات کلمات از اخباری هایی که بعد از می شدن. نظر که و این مقداری از کلمات عددی از بزرگان خوندی و توصی داده گازه شده داشت نحوه طرف بحثی که اینها فرزند ما از غیر از خود این مسئله را به این عنوان که قدیه که قدیه از مقدمات اقلیه باشه دو بس دیگه هم در این خلال روشن بشه اصولا ایکی مسئله هم حس چون معروف شده که ادله احکام مثلا چهار تا سیکشم اقله مراد از اقل با عنوان دلیل و حکم چیه؟ یکی این مسئله که هم, هم این مسئله قایده ملازمه محروف که در کلمات به از ا جاری و ساری شده خصوصا قبل شیخ یکی از مباحث اصول بوده عرض شد که برای توضیح کلمات مفهوم ملا محمد امین استرابادی و همین کتاب فوائد المدنیه این اثراتی که من از همین شاپجوی قم این, این راجع به کتاب مرحوم سید نورالدین آمری اسمش همون شواهد مکیه از باید مراجعه کرده این چون پس کم دیوز مراجعه نکرده خودش اسمش شواهد مکیه تسریح میکنه در مقدمه نوشتهش البته شواهد مکیه اسم ناقصشه ایشون اسم کاملی که برش گذاشته و سمینا به شواهد مکیه فی مداحض حجز خیالات المدنیه به شواهد المدنیه خیالات مدنی علیه که ماکان اسم اون کتاب رد ایشان همونه ارسا که یه مقدار مطالب رو از خود مطن کتاب فوائد مردنی یه خونده بشه تا معلوم بشه نظر خود ایشون چیه و نظرشون آره واقعا قطع حاصل از مقدمات غیر شرعی غیر کتاب سنت یا مطلب دیگری این مطلب حکال انشالله سر میکنیم روشن تر بشه مطلب به ازن الله تبارکت حالا مقداری از عبارتیشون خونده شد امروز مقداری دیگه از مطالبیشان در این سیاق خواهد آمد اولا ایشون در مقدم روح مطلبی رو که میخوان بگن بیان کردن در صفحه C از این چاپ نوشتن که المقدم فیزیک ما احدث حاله علامت الحلی و موافقوه خلافند معظم الامامیه اصحاب الامه اون روح مطلب رویشون در زن دعا و هو امرام یکیش ایش احد تقسیم و احادیث کتبنا المأخوزت عن الاصول التي علف الاسخاب علف اصحاب الامه علیه مسلام لعمره هم لتکون مجمع لشیعه في عقائده و عماله هم. البته ایشون تحبیر به اصول یا اصول عربعه زیاد دارن خیلی اصرار دارن روی حجیت کتب عربعه رقایات کتب عربعه نکته شما همین کی اینا از اصول عربعه گرفته شده و این اصول عربعه اینا اصول صحیحی هستن که عرض برعیمه شده و عیمه اونها رو تایید کرده و عیمه این اصول عربعه رو قرار زن لسکون مرجن لشیه لا ما لا سیما في زمن الغيبه الكبرى لالا يزي من كان في اصحاب الرجال منشئته این یه مطلب اساسی ایشانه که در کتاب زیاد تکرار میشه حالا ما قبل از اینکه وارد بحثش بشیم قرار هست کلی مثلا تعبیر و اصول اربعه منه ثابت نیست حالا اینقدر ده آثارشون به هم بار می فرند ان شاء الله در خلال بحث الان مقدمه بحث اول تقسیم احادیث کتب اصحاب نالا اقسام اربعه و علا زعنه معظم تلکل احادیث ممحده فی تلکل وصول به امره هم الله علیه مجموعه غیر و صحیح هم این درست میسی مطلب ایشان زعنه علامه الان کتب اربعه هم فرمونی محقیقت ندید یعنی نمیده نه نه یلا یعنی اولین کسی که اصول اربعه و معنه گفته برسبونه که ما داریم ابن شراحو دهقن میشکنیم اصلا خبر ندیشون کسی تعبیر اصول اربعه نداره ایشون هم از شیخ مفید نظر که در هیچ یک از نوشتارهای شیخ مفید اصلا موجود نیست نمی‌فهمم خدای مورد زمان شیخ مفید یعنی الا تقدیر صحت نقل ایشان دری که از آثار شیخ مفید بوده که به ما نرسیده ایشان که ذروق نمیگم مستلزم رو الان اولین کسی که این رو گفته مرحوم دست ما رسیده مرحوم ابن شهر که در قرن ششم بوده نقل کرده از مفید که الان هم در هیچ از آثار مفید وجود نداره. وقتی این راجع به مفید، قبل از مفید شیخ مرتضی موت هست, توی این هست این و هم مفید. سیر شیخ توسیس نجاشی هیچ کس از اونها اسم نبرده در کلام اصول اربعه در هیچ که از مسادر اصحاب ما وجود نگره که این هم آثار رایش باخه بشه الا کتاب معالم العلماء ابن شهراشو غیر از این که ایش هم از مفید نه همه من مفید دروخ چون نمیگه قطعا درون نمیگه همه بله احتمالی که ما دادیم چون ابن قضائری پسر کتابی میده فهرست الاسول یک کتاب بیم به نام فهرست, فهرست المسندفان شاید ایشون تو فهرست اصول بودید 400 تا کتاب رو فهرست کرده شاید خیلی بعیده مثلا از اون شلپنجاق را از که بودیشون یک کتاب بنویسه این که خیلی بعیده احتمال که بنده میدن نه در حدی احتمال خود من که این محطاله اولین بار در کتاب ابن غزائری آمده تعبیر به اصول و مصنفات تو کلمات اصحاب هست قبل از ابن غزائری هم هست اما این کلمه هر برمه چهار ستا چون الان مثلا در رجال نجاشی کل اصولش شده تا در کل کتاب نجاشی کل اصول به کل مواردی که نجاشی گفت و اصلان هشتانی این تا چهار ستا خیلی فاصل داره این کل مواردی که نجاشی گفته. مواردی که شهر گفته بیشتر بوده هفتاد که مرموم آبوزو رحمی الله در از ذریعه هرچی شارد دوباره وارد رو نادر و, و در قیل و قال گفته شده همه رو که جمع کرده در اول از ذریعه صده 17 واسه تا تا خیلی باسه ده مرموم آشه آبوزو در اول کتاب از ذریعه در تخت کلمه اصل اینها رو جمعوری کرده اصل اصل اصل کل دونه که ایشان جمعوری کرده که اصل کنجی نجاشی و, شیخ و حالا مثلا چاره دوباره دو ناده رو حالا همه رو با هم دیگه گرفتی کرده گفت فرس ها لحمه ها شهر محاوده ما همه شده سمی 17 از این اصول ارزمه هایی که ایشان این حضرش بنابودشته که اینا وجود داشتن دو مقرره در انگه شدن در مغروه برای به شوکی عشقه دیگه واقعا خود محفید اینه هم فهم بوده که که چار فتا اینکان افتحانی که محفید درکرده رو محفید اهلی کارا نیست کارای محفید مقابل ما موجوده اصلا محفید در بحش رجال و حدیث شماست که خیلی اونقدر قدیه قدیه نیست تو ار ارشادش مغزن تجیبابره برای ما مثلا بکرانچی به روازی که روازی به حضرت زهراوی مرس از مسادر ضعیف اهلسنت برداره از کافی هم درخور نکرده خیلی هرچی به ارشاده شما لازم کنید هست یه آثار و معشق چیزی نیست که مجبور باشه آثار شیخ موفید منزل بخون بله شیخ موفید داره روا اربعت آلاف من استقاط من اصابی اینه داره اینه اماموسو اربعت آلاف, آلاف. اینه اصولا روات. و من در همین جلسات عرض کردم این عربع تالاق منستقات این ایشون از کجا چون اونی که ابن داره ابن اوغده کتاب در رواز همستاده چهار هزار راوی اوغده تحبیر به سقه این تعبیر منحصر در که مفیده عربع در کتاب ابن اوغده آمده این قبول عربع راوی نه عربع کتاب اشتباه نشه راوی هم کراراً عرض کردند. چون ابن عبد اخباریه به این معنا هر خبری ضعیف، صحیح تو سنده جعال و ضعیف مجبور اصلا ممکنه اسم درست قرائت نشده مثلا بعضی افراد داریم حفظ یا جعبره مردد ما به مثلا سازه معنی این اسم چیه؟ چهار هزار تا این طوری به این معنی گفته روبارت عنه صادق اینا دفتری که طیعه کرده برای هر نظر یک روات حت این برما انح را رو ان ساده این که جزو رواتمان ساده این کتاب علم او بر اینجوری هست که این خوب این خب نظرره علمی از قابل ارزش اینصبح خب ممکنی ضعیف باشه تذاب باشه عث مصرف باشه معرب باشه خیلی مشکلات داره این عبارت رو اگر شخ می پس کرده خ که شخ مدی خیلی عجل آین یعنی میگییم خ کهشون متفن شد که خب خیلی بعیدهه. یا مثلا از کلام ابن اغدف اهمیزن که ایشون سقاط هن اونم خیلی نمی کنیم اونما بسردن این کلم اک... من اول کاریتم نیز معکدن در کتاب ارشاد هر وعطالات من از سقاط توش کلم سقاط داره اما ما هیچ شاهدی قبل از چیخ مفید بلی این مطلب اون نجاشی چندی نفر از اصحاب ساده ما توشیه ها می کنم از اصحاب ساده بعضی هم آمدن به جالیه متحقی گذن کل کلو من روانه ساده داخل در این چاریزات تا توصیح رو زنید برای اونها رو توصیح کرد حالا یا این کلمه اصول یه اصول هر برمنه چیزی چیزیست که خود این کلمه یعنی این چاس تا واضح نیست الا اون احتمالی که من از کلم بیم فالم نشدم، جدیگر نیدم که احتمالا فهرست و اصولی که ابن ق احتمال هست چون بعیده مثلا پس نام کتابی که شیخ توسی عوضه هفتا تا از پس هشتا تا از برای هشتا تا از کتاب نمیمیزن خیلی بعیده برای هفتانه شد برای که نجاشی نوشت. برای ایدن که کتاب نمیمیزن این که رسمش نیست برای کتاب قبل از این خوب در قبل بفرمه اصول هر برمه که ایشون خیلی روش اصلا دارد و ب بله راسه اینو عیمه دراعت شده راهنما اینو به شیعه به اینها رجوع بکنید عیمه که از که هر چیزی درمیادن اون کتور معنی اصح باشه صدا اینو ندارم یعنی حرفش اینجوریه ک بر اصول یعنی چی نا اصول یعنی چی <مارد بحثت> <خلاص با> <تصفيق> <تصفيق> شما حتی خود کلمه مرد بسته چی مخواهیم؟ ما لحظه اصول چیه؟ عمر بن نهندره که کتاب نداشه شاگرد اسمون این کتاب پیش امام صادق رفته کتاب جمیل بن 19 پیش امام خود زرارک نداشته ننوشته زرارک شاگرداش شما شاگرداش نمیشته این کتاب شاگرداش بیش امام صادق رفته یعنی چی مردم؟ اصول این چی طول ما احتمال اقتماع دادیم کلمه اصل اساساً افتداعا در حدود عوائل قبل و زمان امام وزا و بعد از امام وزا و حدود اون زمان به ذهن ما تالا به اینجا خیلی زنمات گفت که با جفر و رم رسول الله و, و جبیل و قدیم که از اون زمان این اصطلاح پیدا شده این اصطلاح هم خود معلقی به کتب ندادن اشتباه نشانا مثلا یونس نظرحمن اسم کتابش عمل یون این عربه شده در امام عسکری مثلا گذارد همه خوندن تایید فرمزه بعد مثلا بعض این اصلان شما تبره و اصل کتابش عمل یون ولی. مثلا برای ما ثابت نیست که کسی از اصحاب اسم کتابش عصر بذاشته این یک وقت است که بعد گفته شده و به احتمالی که ما الان آنها در ذهن خود بندهی تا با وجود داره این احتمال ابتداعا توسط واقفی مطرح شده چون واقفی ها به امام رضا مراجع به کتب اصحاب مراجع نمی کردن چون به امام رضا مراجع و از جواب به بعد مجلوشن به همون کتب اولیه از اونا تعبیر به اصل می کردن تبیر به اصل به ذهن ما علام. یه شبایدشون جه بحثش چون بعد بحث خبرواهید میاد چون باز بعد همه کلمات محدث استرابادی میخونید تو بحث فکریت خود رو برورد این شد آره من میخوام مقدمتن پسی یه بحثیشان این که این تقسیم چرا شد این تقسیم عربه بعد ایشون میتوانید و زعم محاضا این که ایشون این تخصیم کرد نشه امین حدت ذهنه چون علامه خیلی تیزهوش بود و از تونتون تون آخه از شهنه که اجل من ضرور مثال نگم نه اینجا یعنی المختار و مهزار که که زیاد نمیسه هر رو اما مربوض زیاد نمیسه المختار و مهزار بازال و هوا بین اصحابنا نزیر فخر راضی بگر آمد خب خیلی از... چون من نمیخوام تونت بشم و من انصافم باید بایدشان باید جواب تونتری با که تشیریم <تصفيق> فخر راضی ما موشدیم وقت ثانی حالا من اینه میخونم بعد توضیح میدم بله، حالا من یه توضیح مختصر میدم وقت میخوام اول دیگم خلاصه مطالبی که ایشان دارن چیه که معلوم میشه وقت ثانی نقطی دوگم اختیار انهو لیس الله تعالی فی المسار اللتی ریت من ضروریات دین ولا منظر رویات المذهب دلیل اون قطعی این کلمه دلقه این مجبه این اشتباهات بردی شده دلقه اینیست و انهو تعالی لداله بیرن یکلیت عباده و فیها الا به عمله به زنون المشهدی ایشون میگه مرد متلقن به عمله به زن مشهد اخته او اصابه وجر كلام العلامه هاذا الى التزام كثير من القواعد الاصوليه المسطوره في كتب العامه این نتیجه اینه که هر اهل سنت رویشون گرفته حالا اینش مهمی المخالفه ما تواثر به ما تواثر به الاخبار خیلی توزن جمال الدين ادبي اما تصویم نمیشه اللهم به و متواسق اخبار از صحبت میکنه که هر چیه حرز عجیبه المخالفت لما تواثر اخبار، به الاخبار مثل و خوبه کانف یه غفلت نزاله این اللهم متواسق نبوده. حالا این یک طرف قصه ولما الهمنی ربی بداله و وجه به علیه اوها را لند تأخذ می فلاخ لومت الائم فا از همته بو و اللهوی عصمونه نمیدن ناس این خلاصه عرض و مطلبی که ایشان داره که مطلب اول ایشان رو انشاءالله تو بحث اول مقرد وجه خبر واحد بحث میکنه حالا من برای نمونه از سر نمیخواد میخواد نمیخواد این می می می بکشه مرمومه آیه که بعد از ایشان به چند سال بوده سی سال ایشان در اون مطلب اولش نوشته اولو مافیها بالکلام ایوان شناعه نصرت الاهداد قدس الله و ثانیه بعد ایشون تقسیم بندی میکنه اینکه و نیست بل اشغال لیت جمعی مان و اصول و غیرها محققا تمام بله اصول در اصول منسوس عليها منهم معروفه بعد تخمین دندیه که روایات این شبیه بحثی که من مطرح ایشون هم اصول رو قبول داره این بحثی که من گفتم بله اما میگه اینا صحیح نیستن بله بعد ایشون میگه و کیفه جازه ان لغو انیان سبیل الالامت الهلی اعتقاد ان مؤذم تلك الاخادیس الممهد به تلك الاسور غیر سریحه و من این علم ان جمیع ما ورد انهم سوان کارن سرگان قد امرو به اثباتی به کتابتی قد امرو و قد صحه انهم تعملهم و تعروهم من من یعقد الحدیث انهم بعد بعد انگی بعد اینه که ایشون میگه همه اینها درسته بله بعد ایشون میگه که مثلاً دو روم هم از من هریم الاسترا علی الحلامه ان نهو یا که به قول مطلع و این وجد مذاق عليه من التزامه ل الاخبار ل اخبار اصول او صرور و علامت و اعرف و منحب الاخبار و اوسع و اصطلاح انتی جمیع الالوم و هم این نحوه تعبیری که بله ایشان به کار برده مرمون لا محمد امین استرابادی خیلی خیلی مشکل تعبیرش خوب نیست حیفه از مثل ایشان نه ایشان ها. کلم علماء جور تعبیر رو به کار بردن خیلی غیر دقیقه و بعد ایشون گه و دعوه المسنف که ان کل مسئله تنمه اصول او فرول آبودن یکون لبود دلیل قطعی یستفاده من الحدیث دعوه یونکر حل ویژان راست میگه این نمیدونم حالایشون واقعا توی رواید کار نکردن تاریخ وارد نبودن این مثل کنها قطعی هست که فه امن احادیث کلها تحیحا و ضعیفا لیسه فیاما یستفاده منها جمعی احشام ولا نستن الا انفان بنو من الرجوع الالقوائد القواعد اصول از ثابت ان اهل البيت ارجاعشون به قوت رقبانی الا بله تا میگه که تا آخر بحثه که بایشان با دارم احسانم که اما این اجمال مطلب بود حالا یه مقدار تفصیل بیشتر ایشون یه فصل خامس دارن فصل خامس ایشان صفحه 264 است. در بیانات ایشان کثیر مناظره‌ای حاصل را در مذهب ال عامه خاص. این فصل خامس ایشان اجمالا نفی اصولات تفسیر نمی یه فصل شادس دارن این فوندیشن فصل شادس از 265 شروع میشه. الفصل السادس صدر ابواب التي فتحت فتحات عامه للاستنباطات الاستحسانيه وتنيه ونيت للشرح ووجوه تفسيره و در اینجا كل ابهاص رو ایشان میارن. که اینا مثلا این مباحث چیه و جوابی که ایشان میدن و مباحثی رو که ایشان در اینجا میارن البته اگر این،, این لاعقل چاپ این کتاب سهل می کرد این رو مثلا گازی گذاری می کرد بهتر حالا بگید من چون خیلی طولانیه دیگه این فصل طولانیه بشانه اول ایشون اجماع رو مطرح کرده، اما تمس سقو بالا اجماع لرد کردن و اشکالاتی که کردن اما خیاس که خب این بعد دیگه تقرد قالبی ابن الکنید از حاب ناسم رجعن علاماقی بعد دینشن داری زودت همه سوکهی لعدلت سوام استنبات و احکام نظریه من زواهر کتاب الله همین بحث بحثی که بعد خواهد آمد حالا اینجا علام منجاشت به شما عرض کردم به عنوان حجیت زواهر که مرموشه کلام رو اونجا نردونه میکنه پس این بحث دیگه حجیت زواهر کتاب ببینید ما ابحاث اصولیه چیه این بحثی که و اما استنباط و احکام نظریه من از سنن ندبیه یعنی حجیت زواهر سنن پیغنده این چنده شد پن و اما شرع من قبلنا یا من قبلنا استصحاب شرایع صابقه این استثاب هم میگه که ولی من جا دیدید حمل و بعیر و هنه بینید زهین گفتن میشه زامن شد قبل از کار تمسک باید این چند تا شد؟ پنج و اما تمسک به ملازمات مختلف ها شیشون بحث ملازمات مثل هم نله همه بشه یک سرزمان نه از نازه یعنی دقیقت این مسئله که های خودتانه علم پیدا میشه این هم یک در همون گیر بحث ششم پنجامت توش اگه من عدد شکوم کردم که که به ملازمه هم. بحث هفتم و اما تمثل به ترجیحات استحسانیت زنیه. مثلا این روابی، این روایت اکثر اعداد این روایت رابیش روایت اعداد اینا این روایت این چندون که بحث هفتم کرد. و اما تحریر مشتر اند تعارض لعِم اند اگر تعارض تبدیل نباشه تحریر این کهندم شد و اما تماسکو به برایت الاصليه في نتیجه شرعي اینو هم شد هم عصیل دیگه کلی عصیلویی و اما تماسکو به برایت الاصليه في نتیجه شرعي این هم ایشون قبول نداره چون در بحث برای از خوادامه و نکات لکیفی هم بردارمون شد این نهم شد و اما تمسخو به استحاب حکم شرعی پس مرادیشان از استحاب در یک کل اصوله به استحاب حکم شرعی این هم دهم هم شد یاد و اما تمسخو به استحاب نفی حکم شرعی بعد مثال های نیزه به زوره بایات حالا من باید اون بحثانی با خواهد بشم شنو با تو بحث خودش, بحث خودش این لهم من مثال مرسله این یادده شد و من تمسخ رو به سهتا این دوازده هم شد پس ایشان مرادش از مباحثی که ارزش نداره اینا این یه تصدیل مطلب حالا من یه مورد رو الان ولو به ترکید نیست ترکید نهان من بعد اشاره می کنم ایشان ترجیحات زنیه البته این اشکال مرمومه سه نوردین آملی بله در همین مثلا که ایشون خواباش هم ارده جزا ادل با وقتی کارگیر میکنه به خواب هم تمسخ میکنه در همین سفره 278 که ذیل تمسخی به براعت باشه بعد ایشون میگه بقید رئیس و خیل منام ولی اقضا عبابا مفتوحه للوسول خیلال حفظ خیلی عجیب این واقعا خیلی تعجبابل از مثل ایشان این اصول باطنه بعد با خواب درستش نمی کنه اولا با مفتوحتا للوصول الالحققی ها در این مقامات فلحرمین شریفین و شاهد تو به این البطر و البصیر مثل آقولی تعالی ولدین جا هدوفی نال نهلیت نهو نه نهو مرمو هاست نور دین فرمونن در حاشه این نال اعتماع سی مثرات المقامات علالمنامات دلیل ضعف العقل <تصفيق> این صادقی از عالم غیب کی از مصطفی بن حالا شریعت بدی این استدعا به عالم خرد بدی است که ثبت و تعبیری هستن به وصول الحق علاوه ظن زنی قرار نیست مطلبی رو این منامات رو ایشان طریقا محسوب کرده به وصول الحق بله بعد ایشون میگه بلا یقیق یعنی و تصور رو به وجه لأن الانسان من تبعیه را کف را انده و یا حجس بشی، بشه این را منام اگر یک کسی خیلی در اوهان باشه هم تو خواب میبینه این از بعض دو اصولی بوده تمام مفلو تو خواب هم دیده که مثلا با حسول حالا من یک مطلبی رو عرض بکنم بر نمونه که اصولا دیگه ما واردین دعواهای دیگه این ناسه اینجا با صفحه صده وقت رئیسو فی شهر لیلت جماعی فی مکه فی بله فی المنام هنموی و من اخیار الانام فی مقام تشبیه به قولیه من یعنی اتر حکمه فقط او که تو خدا رو حکمت از این خواب ها متعتقانه ایشان دارم یالا من تصادتاً رو سر تو میتونن یعنی خود رو از خیلی واقعا امسال تا قصره که نباید آدم تصور این بحث رو انجام بده بعد ارز کنم که حالا من یک مثال بزنم به جه اینکه این دعوه های من ارز کردیم دعوه ها و خواب و بیداری و میگه این مال بیعظی و میگه فلان و اینگه حق است و من خلال زینه حقای خب به ما به جه این بحث های نمونه علمی رو مطرح میکنیم بحث علمی روش میکنیم به جای اینکه اینجور به اصطلاب فهاشی دکیش در صفحه چلاه هست از این چاپ ایشون کلامی رو به طور تقریبا تفسیلی تا صفحه چلاه هست از علامه نقل میکنه من به جه این بحث ها تکر می کنم هست. یکی از این مبارسی که ایشون در اصول نعرو کرد ترجیحات ب ترجیحات استثنایی ببینید این ما بکنه اصولی یعنی واقعیت طرفش رو کنیم من چند بار عرض کردم در اصول اهل سنت خوب دقت بکنید میگم که خواشه و به تعارض خبر از پیغمبر اگرم چیزی نقل نکردم این خیلی نکته است. یعنی در مصادر اهل سنت حتی یک حدیث هم وجود نداره که در رسول الله بگن آقا از شما دو جور متل از نرفته شما کده مستده درست میدونی؟ از امام صادق ما داریم مثلا از امام سجاد ما هم نداریم خوب دقیق بکنی اما از امام صادق داریم خود این که به تنظر سریع از امام نه اونچه درست در وقوعش نکنیم خوب دقیق بکنیم از پیغمبر اکرام اهل سنت نقل نکردن به رسول الله حرض یا رسول الله چکار کن و تعارض. ما چکار بکنیم برقیم. پس این نتیجه خیلی خوبی هم میان. تعارض در روایت رسول الله اثباتیه یعنی بعدها شده سبوتی نیست واقعی نیست خب. روشن شد این تعارض اثباتیه خب وقتی که از فیغمه نقل نکنه خب ترجیح هم نقل نکنه که خب کار بکنیم لیکن عملا در کتب و اصولشون مثل احکام مثل مثال برای مثال تو بحث تاروز توی یه بحث تاروز آمده در مقام ترجیح حدود 80 وجه برای ترجیح نهاره کرده خواهی نخواهی تمام اینا می کنید چیه با قول این آقا استحتاری همون مطالبه را با کمزیادشم به کتب از خواب ما مثل علامه سرایت کرده درست سر چیه؟ یعنی ایشون یه مطلبی داره اون مطلب اینه که خب اینا که نبوده این همه وجود نبوده این در کتاب آمنه آمده شما چرا دروسی مسئله برات کتاب آمنه آمده اما این مطلب بخاطر گفتن یک مطلبه غیر ایشون واقعا یک تحریری علمی ببین فهاشی و سرسدوهو خب اینا هرجور بگید که دا... حالا من برای نمونه که شما ببینید وقت در روایات ما هم مجموعه حالا اگه مجموعی که گفته در ترجی مثلا یکی مخالفت با مش... محافظت با مشهور محافظت با کتاب و سنت محافظت با مخالفت با آمد چهار پنج تا بیشتر نیست این در کل روایات ما در کتاب اهل سنت آمدن رو وجود حقیلی تا هشتاد هشتاد و در ما خب بگم یه احساسی رو من چون به افراد کلیتون نشم مثل این نفر. یه احساس که مولا محمد در این استغابادی خب محکم بوده بلا اشکال کتاب رو هم دیده اینشالله بحث از میکنم اصلا مولا محمد استرابادی بحثش که تو اصول فقه نیست او یه بحثی هم در علم داره اصلا این حرف فلاتفه هم روشنی مثلا یه اشکال کلی داره و اشکالاتش به منطقه و فلسفه یونانی بعض شبیه همی همه همه هست که الان دنیا روز میزنن که تقریبا در سمون زمانی که قرر رو به مذهب تجربی و مذهب حسی در شرم هم نخسته این کسی که رو میاره همین مولا محمد علی نه من انز میکنم من این که اصلا یه پس در این خدا در نقدر فرکتر رو برزدی داره و منطق داره این که میگنه منطق آسما از خطا سیشون میگه نه آسما منطقه عرصی ریزو آسما از خطا باشه یه اشتاس میکن؟ در اون قبل که من معروف شاید معروفه ابو سعید ابو خیر که ابو سعید به ابن سینا گفت که من شما شکل اول نشکل دوریه چون نتیجه اوضاعه از بر کلا کل تو وقتی شما یک کل موتقعیرن خواهیستی که از موتقعیران عالمه شما میخوای این پیدا این که عالم خواهیست و ثابت کل موتقعیر خواهیست اگه میخواد ثابت کل ابو ابو این اشکال معروف که کورا متوقف بر نفیزی، نفیزی متوقف بر کورا و این دور لازم میاد. تو حالا این به تعاریف مختلفی خلیفی شده اصوله یه مقدار مشکل که, که ایشان داره اصلا دست حسول هم نیست چون به تصور ایشان فلسفه آمد در دست فلسفه هم کلام آمد روی کلام هم حسول آمد مخواد اون ریشه ها را خراب بکنه که کلن باطله نه این کلن بخواد حسول باطله لیکن احس کردم یه بحث اون آدم های برخنبار صحبت رو کنه یه بحث میاد اون واقعیه حالا من یه مثال رو بزنم که کاملا روشن بشه از سیغم بر ما روایت در ترجیح نداری مثلا در تاروز نداری از این من محدود داریم حالا اگر باشه در تاروز باشه اونم تازه الاسلام اما در کتب آمه تا هشتا برش ترجیح نداریم میاد به خطب خاصه، ایشون این اشکالش اینه که اینا از کجا شما آوردین اما باستان میگه این مقدارش قابل دوست میگنیم اون تونگیاش و فخاشش کنارگوشه این باید یه حمله علمی بشه این شما از کجا آوردین مثلا اینشون از علامه اینطور در صدیه چلاه و چلاه و ذکر کرد علامه این مبادی الوصولی در مباده چاپ چاف شد از خبر و لذیر غوات ر او کان رواتو و اعلم او از کا او از هد او از کر او ارش اشر راجعه. ول تفیح ارجمن غیور. ول اختر ارج. ول عالم بلعربية ارج. ول عالم دهها ارجمن العالی. و صاحب الواقع ارج. اینی که توشمون یکی نش میده. اگه وقتی علی خودشواره ولشیده بود. و مجلس علماء ارج. و معلوم ادالت رو به من المزکار اگر یک نفری ایست که با تسکیه صاحبه شده نفر خودمان و المزکار به احلن اولا یکی رو نجاشی توصیف کرده یکی رو غیب نجاشی خب ما نجاشی بهتر و لعشد و غرطن ارجه و الجازم ارجه من از لان به رعاسه ارجه من غیره و المتحمل و وقت البلوغ ارجه و ذاکر و سبب عرجه. من بشوكه 80 صفر تعجب فرسی خب اینطوریه این قاعده او شاشه من تو من تو دراو للرج ارج عن ال به حدیث غیره ارج عن والمدنی ارج عن المکی لقله المکیه ب... ب... بعد المدنی و الوارد بعد ظهور نبی ارج عن این وارد بعد ظهور نبی مکی یعنی تو احادیث اهل سنت بیا تو ارج از معنی ندارین کلا و دو سبب اولا و الفصیح اولامن الرکی، و لا ی على الفصیح، و الخاص متقدم، و دالب الشرعي و شری اولوی اولامن اللهایی، و حقیقت اولامن المجاز، و دالب و من اولامن دالب و جن واحد، و مؤمله اولام، و وما اولام، و مافیه اولام. بعدی اصطلاحی داشتن ناقل و مقرر آره این اصطلاح ما به کار ناقل اگر خبری باشه که در خلاف عقل باشه مقرر خبری که موافق با اصله چون خبر در خلاف عقل ناقل میگن موافره و مقرر میگن یه بحث بوده که ناقل اولاست مخالف اصل یا مقرر بعدش میگه ناغل ان و ناقل اولا عن حکم الا اصل راجحا علی المقرر و دلیل دلع و المجتمل على الحضر من یعنی حرام راجعون اندالکرخی على المشتمل على الاباهه و مستقیان اند ابی هاشم جبایی و المصرط للطلاق والإطاق مقدمان على النافی موافقتی لموافقه للعهد و مستقیان و النافی للعهد راجعون على المصرط والذی عمل بهی بعض العلماء هر الذي الذی پرکو خب یه مطلب حالا این تردیش ها اسمونی با ترجیحات استحسانیه یه مطلب این چی؟ مطلب در کتاب ها که آمده خود که یه بستش نیست علمان ما هم برداشتن عوضن ایشان حمله میکنه که ما اینا دلیل برش نداریم حالا به چه این حمله کردن ما این واقع روایات خودمون راز خودمون اصحاب خودمون رو ببینیم خب اون که خیلی اولاد از اینجور حمله های بی حساب کردند و نستجیب الله معدی بشه به سو امنال قول لایه بلله جهره به سو امنال قول انشاءالشون وحف خودش اوزن میخوام سچاره بودش فردا بردن الله سال الله علیه محمد, محمد.